اعوذ بالله من الشیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و والسلام على رسول الله صلی اللہ علیه و مسلمانان محترم درس امروز ما شما درباره زبان است و ما درباره زبان و خوبی ها و بدی های زبان چندین درس خواهد داشتیم شما می که زبان یک عضو کوچک در وجود انسان است ولی فایده های زبان و ضرر های زبان و خطر زبان بسیار بزرگ و کلان است خب در درس امروزی کوشش میکنیم که اول احادیث آیات و روایتی که درباره زبان آمده است اینه خدمت شما تقدیم بکنیم دوستان عزیز زبان یک عضو زیبا هم است و یک عضو خطرناک هم در وجود انسان است. زبایی زبان ای است که وقتی انسان زبان مثبت استعمال بکنیم یک چیز بسیار خوب و مفید است که نفع زو بر انسان ام در دنیا و ام در آخرت میرسه. و اگر زبان منفی استعمال شود باز اینجا زررش هم در دنیا و هم در آخرت بسیار بزرگ می باشا. خداوند متعال جل جل هو می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذ یتلق المتلقیان اذ یتلق اذ وقتی که از ایه کلمه رو ما شما هنگامی که یتلقی المتلقیان یتلقا، یعنی ملاقات بکنن متلقیان دو شخصی که ملاقات کننده هستن وقتی که دو نفر با هم ملاقات میکنن عن یمین و عن شمال قعید اینجا میگه این دو نفر که با هم ملاقات میکنن یکی از اینا به طرف راز و یکشان به طرف چپ قعید نشسته هستن خب اینجا وقتی که اینا دو نفر ملاقات کردن ان الیمینه غالبا در ملاقات یکی به طرف راست ان الیمین به طرف راست چشتن و عن شمالی و کسی دیگه از طرف چپ نشسته است قایید یعنی نشستن یا به طرف را به طرف چپ هیچ خداوند مطال جل جلو جل چیمه که ما یلفظ من قول ما یلفظ من قول تلفظ نمی کنن. هیچ سخنی را الا لدهی مگر که در نزی زنا کی هست؟ یک رقیب مراقبت کننده عتید آماده خب دوستان محترم ما شمای آیت شریف خواندیم و لازم از دباره آیت شریف لحظات سکوت بکنیم و فکر بکنیم و ببینیم که ای آیت مبارک خدای عزوجل چی گفته است؟ ایجه خداوند متعال جل جلهو بر انسان اونمو حالتی که دو نفر با هم در هنگام ملاقات میباشن این ای تصیل میکنن که در اونمون لحظه ای که انسان دو نفر با هم ششتا و اونا فکر میکنن که گا ما دو نفر هستیم میتونیم غیبت جانب کس سی میره شبه کنیم بدی بگویم براز او پلان من بسنجیم به سنجیم براز او بکنیم او را مهم بسازیم پیش خود نقشه ها و بر های خطرناک داشته باشیم اینجا خداوند متعال جله جل جل بر ما مسلمان ها چیمه کهطلاقل مطلاققیانه یعنی عن الامیننی و آن شمال قائل ما یلفظ من قائل ایللا لدیه رقیب عطید هیچ سخنی را تلفظ نمیکنم، مگر اینجا مگر اینکه با امرای اسرائیل کی رقیب هست؟ رقیب مراقبت کننده هست، عطید آماده. اینجا انسان مسلمان در اینجا باید در نظر خود چی را داشته باشد که کی مراقب هست؟ این مراقب ذات خدای یا است برای خداوند جل جلوه انسان در هر حالتی که زندگی میکنن در هر حالتی که هست ارسخانی که از زبانش بیرون میاویه به همراه هر کسی که صحبت میکنه، هر چیزی که بر برنامه میریزه باید متوجه زی باشه که اگر او انسان غایب است اگر او نفر نیست اگر او آجز است اگر من میتونم بر از او پلان شون بسنجم من چیز کردن هم میتونم باور بکنین که اگر کل دنیا بخوای برای انسان بدی بکنه بدی کردن نمیتونه مگهام چیزی که خدای عزوجل بر انسان مشترک کرده و اگر کلی دنیا بخوای برای انسان نیکی بکنه نیکی هم کرده نمیتونه مگهام چیزی که خدای عزوجل بر انسان نوشته است رفعت الاقلام و جفت السحب حضرت پیغمبر صنم قلم ها برداشته شد کتاب ها خوش شدند کس نمیتونه برای کس بدی و ضرر برسونه لکن این که به کس دیگه با یک کس دیگه شیشتن با برنامه زشت رو غیبت میکنن یا سخن چینی میکنن یا ایب از اون میگه یا سرزورش خند میزنن یه کس مسخره گی میکنه یا, یا ما یلفذ هیچ سخنی نمیگن الا لدای رقیب یک مراقب است که آماده است این مراقب آماده کی هست ملائکه های هستن ملائکه است که هر نقطه‌ای که انسان تلفظ میکنه هر لفظی را که تلفظ میکنه آج او نوشته میکنن و آجل او را در دفتر اعمال انسان ثبت میکنن پس انسان مسلمان با خواندنی شریف جدا متوجه میباه که آله و خدا مع مراقب هست خدای از زجل مراقب است کرامن کاتبین کاتیبین مراقب هستند ملکه ها ما را میبین و بسیاری از چیزهایی که از نظر ما غایب هستن اونا ما را میبین و اونا در روز قیامت شهادت میند که ما چی برنامه داشتیم، چی سخنهایی گفتیم، چی بدیهای گفتیم کردیم و چی غیبت کردیم و بدی کی را گفتیم از این خاطر انسان مسلمان در هر مجلس و ملاقات خود کوشش میکنه که متوجه باشه که ذات خداوند متعال جل جل هو های مراقب هستند که انسان اعمال شه میبینن و چی میکنن و انسان بالاخره با این اعمال خود محاسبه میشه عزی خاطر انسان کوشش بکنه که همیشه هر کلمه که از زبانش خارج میشه کلمه باشه که وقت نوشتمیشه وقتی که مراقبین او را آماده هستن و نوشته میکنن و به دفتر اعمال انسان حفظ میشه او کلمات انسان در روز قیامت وقتی که پیش روی انسان گذاشته شوا و انسان ببینه های انسان گذاشته شود که مکث کی چی میگفتم اینجا واسطی نشه که او گپ‌های ما سبب از ایشو که ما خود ما پشیمانی بکنیم که کاش که ما ایگه پارا نمی گفتم چرا عاقل کند کاری که بار آرد با شیمانی مهم به حدیث شریف بعدی خاموشی بسیار خوب است خاموشی بهتر است نسبت به زدن و نسبت به زیاد سخن گفتن در اینجا حدیث شریف هم می که عن ابی هرائره رضی الله عنه هز عزرت ابی هرائره رضی الله عنه رواید است که عن النبي صلى الله عليه وسلم حضرت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال كقول مبارك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو لا يصمد متفق عليه يوجد فيها من كان يؤمن بالله بأ جل واليوم الآخر كما يمان في بالله وفي الله جل جل واليوم الآخر وفي آخرات طبعا ما مسلمانا ها مسلمان ها هستیم این خطاب بر ما و شما هست کسانی که به الله جل جلوهی ایمان داریم و به شدن بعد از مرگ ایمان داریم و به روز و آخرت ایمان داریم اینجا بر ما میگه که من کان یؤمن بالله والیوم الآخر پس پیغمبر ص چی چه میگه فلیقل خیرا یا ای شخص سخنان نیک بگویم یا الفاظ خوب بگه او لا یصمت و ایکه خاموشیده اختیار بکنن چه باشن متفقون علیه این حدیث شریف با اتفاق بخاری و مسلم برای واحد شده است از این حدیث شریف ما چه درس میگیریم درس مایی است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما درس انسانیت و اخلاق می دیگه کسانی که ایمان دارن و کسانی که به روز آخرت یقین دارن اینا چی باید بکنن ای باید مثل مردمای یاوا گویی مردمایی که مسخ میکنن مردمایی که به جای حرف میزنن مردمایی که زبانشان همیشه وقتی که بیکار ماند پیش خود خب اشعار و موسیقی های مبتذل از زمزمه میکنن ها چی کنه مسلمان همانطور بر ما درس میشه که کس که ایمان به الله و به روز قیامت داره چرا فلیقل چی کنه؟ بگه فلیقل خیر یا سخنان نیکی بگویم. مثلا اگر در یک مجلس نشسته مجلسه و مجلس, مجلس, مجلس دعوتو بکنه. بکنن الفاظ که اگر چهار طفل و چهار جوان و چهار نفر مهمان که سایه ششتن اونا از سخنان ازی استفاده بکنن اگر جو سفید است بنده درس بده اگر عالم است حدیث یک حدیث دو حدیث یاد دارن خب شما وقتی که یک حدیث دو حدیث یاد گرفتین عالم شدین دمی حدیث یعنی عالم این که آدم باید در کل تخصصات دا علمیت داشته باشه یک حدیث که یاد داشتی دونمون حدیث تو دو عالم هستی به من حدیث شریف برای مردم برسن فلیخو الخیرن یا سخنانه نیک ببین دعوت بوده، درس بتن مسائل اخلاقی رو بیان بکنه مردم رو به خوبی ها و به نیکی ها و کارهای خوب دعوت بکنن اولای است ما یا چیکونن خاموش بشه خلاص وقتی که نمیفهمی وقتی که نمیتونی دعوت بس خاموش باش از اعمال نمیتن از زشتی ها و از سخنان بی از मजाक های غلط از سخنان زشت از گپ های بیهوده از غیبت از این گپا دوز بکنین چره ای کار باید بکنیم به خاطر که پیغمبر سمهی که من کان یؤمن بالله والیوم آخر کسانی که ایمان دارن به الله و به روز قیامت تو وقتی که ایمان داری به الله و به روز قیامت می که خداوند متعال جل جله در روز قیامت از یک یک سخن ما، فمن یعمل مسقال زرة خیر یاره، کسی که به اندازی یک مثقال ذره عمل کرده باشه، یاره او را در روز قیامت میبینه. من یعمل مثقال و وگر یک کسی به اندازی یک مثقال ذره عمل خراب کرده باشه، یاره او رو هم میبینه. در سخت که ما عمل نیکی ما رو هم بلاخره میبینیم و عمل بعد و زشت ما هم از عمل بعد. جزاورش میبینیم از اعمال اعمالی که پاداش شد خوبش میبینیم پس ما چرا الفاظ خدا حفظ نکنیم چرا زبان خدا حفظ نکنیم پس این درس در از برام میاد که میگه که کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت دارند در استفاده زبان خود به طور مثبت همیشه سعی و کوشش میکنن و در صورتی که سخنان مثبت نداشته باشن الفاظ مثبت نداره دعوت کرده نمیتونن در حالی که میتونه اگر هیچ کار رو نمیکنی نمیتونی، خی... که ایمانت قوی نیست، حدی اقل خود از گناه خود نجات بده که آ... الفاظ زشت چرا نگویه که بالاخره سبب بدبختی در روز آخرت نشه. بگیم به حدیث بعدی. در اینجا عزت محمد صلی الله علیه وسلم زمانات جنت میکنه میکنند. چی زمانات جنت میکنه؟ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم زمانات جنت میکنند. چطور زمانات جنت میکنند؟ برکت زمانات جنت میکنند؟ به این حدیث شریف بخوانیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه خصم میکند؟ عن سهل بن سعدین رضی الله تعالی عن قال قال رسول الله صلی الله عليه و سلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة متفق علیه حضرت سهل ابن صادق رضی الله تعالی میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت من یاد ضمان کسی که دمانت بکنه برام و یا من یا من کس که من ارگا کسی اینجا من یضمنو اگر بخونیم خوبتر است به خاطر از اینکه اینجا چیز نیست که حرف شرط نیست بلکه چی هسته کسی من، کسی که من کسی که یاد منو زمانت بکند یا زمانت بکند لی ما بین لحیه هی آنچه که در بین دوریشش هست من زور دوریشی مانا لحیه یعنی برود و ریش اردو یادی لحیه هی لحیه یعنی دوریش خب مگه اگر کسی زمانت بکنه، آنچی که در بین دو ریشش است یعنی بین بروطها و ریشش یعنی دهانش است. اگر کس زمانات دهان مرا بکوره و ما بین رجله و آنچه در بین دو پایش دو قدمش است یعنی شرم گاهی خودم. آب منولا هولجان پیغمبر صلی الله علیه و چی میگه؟ میگه من زماناتی عزیزم میکنم که او جنتی هست. متفق علیه این حدیث شریف هم با اتفاق بخاری و مسلم روایت دهیت شریف دو سایز ما شما که پیغمبر صلی الله علیه و سلام یک نقطه دقیق یک درس بسیار مهمی را در زندگی بر ما میده چی هست درس حفظ دهان و شرمگاه انسان است انسان از این وی را زیاد به گناه مبتلا میشه به غذا به خدا مبتلا میشه به کنگاهی و بیرا حمیره از این خاطر پیغمبر سلام میگه که شما که امت من هستین درست است وقتی که امت من هستین پیغمبر سلام میگه پس شما باید زمانت دو چیز بر برامه بکنین زمانت دهانتانه بکنین که دهانتان هم منفی نکنین، زبانتان غلط استیمال نکنین با دهانتان کس را دشنام ندهی، با دهانتان کس را غیبت شنا کنین، الفاظ زشت نکنین، با دهانتان حرام نخورین، غذای حرام نخورین، مردم را اذیت و آزار نکنین، به که کس که زموانات بکنه از دهان خود بگوید پیغمبر خدا من دهان خدا و زبان خودم خاطر از که از پیروائی تو هستم حفظ میکنم اینجا چی میگه پیغم بستم؟ اگر زمانات دهان کردی و زمانات شرمگاه خدا بکنم چون بسیاری کسا هستن که بازینا و گناه و بسیاری از اشتباهات مبتلا میشن از شرمگاه خود بسیاری کسا هست مثلا در قسمت شرمگاه خود بسیار به تفاوت وقتی که در همه تکنیکارا که کورتارک میپوشه درو کسف پیغمبر صلی الله علیه و آله و وجمیه که یا علی غط فخذيك فانها عوره رانهای تا بپوشان حتی در تشناب در هر جایی که بودی حتی در میدان سپورت وقتی که بودی حتی در حمام وقتی که بودی به سری کسا در حمام یوم عمومی میرن و یا در سپورت وقتی که میرن ران معلوم میشه از مردها از اونها می هم میفهمیم که عورتشون نسبت به مردها زیادتر است اس انسان باید شرمگاه خود حفظ بکنه حتی لباس نپوشه که شرمگاهش آشکار شوه و اتو چش که اعضای بدن ازو کشف شوه ناروا هست از این خاطر پیغمبر سلام علیکم اگر شما این دو چیزه دهانتونه و شرمگاهتونه برما ضمانت بکنید که این دو چیز, هم ای دو چیز هم منفی استعمال نمیکنین و غلط استعمال نمیکنین ما براتون ضمانت جنت میکنم چقدر عالی هست انسان مسلمان کوشش بکنه که در این قسمت در قسمت دهان خود و در قسمت شغلگاه خود کاملا محتاط باشه و تا ای که خداوند متعال جلجهو برش جرنت نصیب بکنن حدیفه بعدی رو میخونیم ترس از زبان یعنی اینجا میبینیم که ترس از زبان چی مانا در احادیث در باره مورد چی گفته شده اینجا میبینیم که عنصفیان ابن عبدالله رضی الله عنه حضرت صوفیان پسر عبدالله رضی تعالی عنہ میفرماید که قلت یا رسول الله میگه ما گفتم ای پیغمبر خدا حدثم به امر اعتصم بیهی میگه برش گفتم که حدثم به امر در مورد یک چیزی برای من سخن بگو حدیث بگو اعتصم بیهی که ما او را بسیار خوب به او اعتصام یعنی او را محکم بگیرم و با او عمل بکنم قلتو الله عزت رسول اکرم صلی الله علیه و سلام بر قل ربی الله بگو پروردگار ما الله جل جلاله است ثم استقم باز باد اون در اونمود سخن خود استقامت داشته باش راز باش قلت یا رسول الله من گفتم ای پیغمبر خدا ما اخوف ما تخاف علی آن چیزی که بسیار ترساننده هست که تو بالای ما در قسمت ازو او یعنی چی هست؟ فا اخده بلسان نفسهی نگ رسول الله صلی علیه وسلم زبان خدا گرفت ثم مقال هذا با درزیم که اینی یعنی ای زبان است که زیاتر در مورد تو می ترسم که نشه که ای زبانت به هلاکت مبتلا بکنم. رواه ترمیزی و قال حدیث حسن صحیح امام تلویزی روایت کرده و میگه حدیث حسن و صحیح هست دوستان عزیز در حدیث شریف وقتی که ما میخانیم همیشه فکر ما و شما باشه که هر حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم و هر آیت قرآنی درستست برای یک انسان مؤمن ما باید وقتی که آیات قرآن میخانیم از خود پرستان کنیم که از این شریف ما چی درس گرفتیم تا ما مطابق از او عمل بکنیم وقتی که یک حدیث برای ما خاندمش ما بگیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایجاب وقتی گفت از این ما چی دست میگیریم چرا باید یاد بگیریم؟ می اینجا میبینیم که حضرت سفیان بن عبد الله رضی الله تعالیم از مبارک است. اینا عادت داشتن به خاطر زیکی حقیقت ها را درک بزنند و درست عمل بکنن چی میکردند؟ می پیش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و پرسانش میکردن ما چی کار بکنیم؟ خوب است. و چی کار بکنیم؟ نکنیم از. صفیان ابن که بعد از حضرت سفیان بن عبدالله راددان میای پیش پیغمبر سال الله علیه و سلام پیغمبر خدا بر من چه چیزی رو بگو که ما او اورا ماکم بگیریم به او عمل بکنم پیغمبر صلی اللہ علی که ربی الله علیه و سلام باشه میگه قل رب الله صم مستقیم یعنی پروردگار ما الله هست چی معنی چی معنی معنیش اینه که بود که دست که مرا خلق کرده که سری به داده کسی که شایسته عبادت است کسی که بر من اولاد داده کسی که پروردگار من هست. کسی که مرا زنده میکند کسی که مرا میمیراند کسی که باید بر ازو نظر بودم. کسی که بر ازو باید قربانی بودم. کسی که بر ازو سجده میکنم کسی که بر ازو باید رکوع بکنم کی از الله جل جلاله قل ربّي الله فوق پروردگارم الله جل جلاله است صم مستقيم باز ده عیننی که گفتی عملا استقامت داشته باش اطنیه که مثلا م در زبانیم یک چی؟ در زبانت همدگوی یا در دلت پیدا سنم عیب کافر و ظاهر مسلمانی چیست؟ که ما در ظاهر بگوییم که آ پروردگار ما الله هست خالق ما الله هست لا اله الا الله بگوییم محمد و رسول الله بگوییم و بگوییم که مثلا تمام عبادت ها ایاک نعبد و خدای خاص را عبادت میکنیم و ایاک نستعین و خدایا در مشکلات فقط از تو کمک میخوایم هر 24 ساعت در نماز های خود هم بخانیم و همیشه کلمه را هم بخانیم و تسبیح هم پڑھیم بگوییم سبحان الله سبحان الحمد لله لا الله لا اله الا الله در نمازهای خود بگوییم ایاک و ایاک نستعین لاگدی استقامت عملی داشته باشیم یعنی yani وقتی که انسان به یک چیز لفظا معتقد بود گفت که پروردگار ما الله جل جلاله است که قلب خود از مصیبت الله دور بسازم در وقت مشکل و ضرورت به الله جل جلاله رجوع بکنن و وقتی که میگیم که ایا انا عباد و به زبان خود وقتی گفتیم که ایا انا عباد خدای خاصه را عبادت میکنم به وقتی که خدای خاصه را عبادت میکنیم چیزی که را عبادت میکنیم چیز نامش عبادت است و به واحد فقط به الله جل جلاله جل بکنیم به کسی دیگه ایه او عبادت قربانی عبادت است بله وقتی که انسان یک حیوان هیچ حلال میکنن بنامه یک کسی یک عبادت است بله یعنی بزبحه کردن یک حیوان در اسلام به صحب قربانی بنامه مسلمان هستم قربانی خدا برکی بکنم به الله جلد جلده مشرکین قراش برکی میکردن میبوردن زبحه میکردن گستنده پیش لات منات چرا می دوستای خدا هست ما پیش بر دوستان خدا ظه می کنیم نه،, نه وقتی گفتی پروردگار ما الله هست پس باید قربانی بر الله باشه وقتی که حیوانو ذبح های می کنید الله و اکبر بگوی کسی دیگه باید حیوانا نبره که ما به فلانی شخص و یا به بوردای فلانی شخص و یا به لنگر فلانی شخص و یا به فلانی کس می برم بر یک یه گوسفند خدا ذبح های می کنم رو خدا بر ازو علال می یا به نام رو بسازی غیرس الله باید انسان نکنه بنا پیغمبر صلی الله علیه که نظر وقتی که میکنی نظر ولیوفو زراهم وفا وفات کردن نظرهای خود وقتی که نظر باید ما وفا بکنیم نظر برای کی میشه نظر یک عبادت هست پس ای نظر باید برای کی بگیریم با الله جل, جل. بر فلان فلان فلان با فلان شخص نه نه نه, نه. شخص هرقدر رد بش عالی باشه پیغمبر باشه دوست خدا باشه شخصیت های بزرگواره باشه درست است اما انسان هستن اونالی قتجر نه که ما بر اون نظر بکنیم بلکه نظر یک عبادت است و عبادت همین که ایاک ان عبد خاص خاصتر عبادت میکنیم عبادت را تو انجام بدیم بون اینجا پیغمبر صلی الله بر عزیز درس می که قل ربی الله وقتی که بوگو که پروردیگارٚ الله هست ثم مستقیم باز د اینمی سخنی که گفتی استقامت داشته باش باز راه دیگیر اختیار نکن بعد پیشی کسی دیکی نرو ب کسی دیگه رکو نکو ب کس دیگه سجره نکو ب کس دیکه سرت خم نکو بیسیاری کساس سر بسیار بیسیار خم میکنن او این ای ناروا هست سرت با کس بکاس خنم فقط سر تا وقت نیم صبح ها وقتی وقت شکایی سبحان رب العظیم سبحان الله با کی میگه با الله جل جلاله سبحان ربی العظیم بنا ان وقتی که در رکوع این دی یک در اینجا بر کی میگه رب العظیم و پروردگارم که با عظمت است سبحان ربی الاعلی سجده الله جل جلاله است از این خاطر بدان دوستان بر که بسیاری کسای هستند که میگن ربما الله هست، لكن استقامت ندارند در زبان یک چیز میگه لکن عملش چیزی است که مخالف مخالف گفتارش است به این انسان موحد در زبان خود باشه موحد در فکر خود باشه و موحد در اعمال خود باشه که اونم چیزی که مخالف توحید است باید او را ما انجام نتیم با اعضای بدن خود باز چی میگه می گفتم که قلت يا رسول الله می گفتم ای پیغمبر خدا ما اخ با ف ما و علیه چیزی که بسیار سرممیت است که بسیار چیز خطرناک از چیز چیزی است که در صاننده است که مثلا نفر میگه مثلا از من چه میتسی که ماو کارا بکنم به بلا مبتلا میشم بدین یک بدی مبتلا میشم ایشا همین برک به میگه بر پیغمبر صلی و سلام که چی هست کو سبب هلاکت ممیشن سبب بدبختی ممیشن و تو میترسی که عمر به هلاکت ناندازن او راه همین پیغمبر خدا ما بگو تو استاد ما هستی خداوند متعال جل جلو تو راه من عیسی معلم من عیسی راهنما من عیسی استاد من عیسی مربی تو را فرستاده هست با ما از با همتون تو است سنت تو از درس تو است کل از استفاده میکنیم پیغمبر صلی الله علیه و سلام میگه فا اخذ بالسان پیغمت هم بالس خود زبان مبارک خدا گرفت وقت گیره پیغمت هم حاید برای صحابی مبارک دست میده که زبان چیزی بسیار خطرناک است در خوردی زبان بازی نخود میگه لقمان حکیم بیچاره رو میگه اما کسی که پیش کار میکردن او گفت برو لقمان یک بهترین غذا را برم بیار. که از بهتر نبار. میگر رفت و برش چیز آورد. زبان. بخته کرد آورد پیش بهترین غذا هست که بله. خب گفت نه برو بدترین غذا را برم بیار. باز رفت زبان آورد پیش این شخص می که لقمان حکیم است خداوند رو حکمت داده دانش داد، داده فهم داد، و لقد آتینا لقمان الحکم خدای ازوجان می یک ما برای لقمان چی دادین؟ حکمت دادیم حکمت چی است؟ حکمت اینمی یعنی است که انسان خیر از شر تفکیک بکنه و رو عملا در زندگی 24 سیعته خود تطبیق بکنه کاری نکنه که سبب بشای ازش از مالا کشپستانش کرد لقمان چی هست؟ وقتی که برات گفتم که بهترین غذا را بره هم زبان آوردی وقتی گفتم بدترین غذا را بره زبان آوردی تو چرا کردی؟ عزت لقمان حکیم برش میگه که بهترین چیز در دنیا که زبان است اگر درست استعمال شما و بدترین چیز در زندگی انسان هم زبان است وقتی که منفی استعمال شما برای تمام علماء و دانشمندار را ببین؟ برای کلشان سر تأکید میکنم که قوت زبان و منفعت زبان بسیار زیاد است. شما وقتی که سرطان بلا اله الا الله عادت بتین و گفتن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر عادت بتین هر کلمه که انسان میگه در مقابل ازیر رحمت خدای از بر انسان جذب میکنه و در مقابل ازین، اگر یک نفر یک کلمه ایزدش کرده میگه، غضب خداوند با آزو ناسلم میکنه. ازی خاطر زبان هم بهترین چیز و هم بدترین چیز. ازی خود پیغمبر صلی الله علیه و برای صحابی مبارک درس میده که یه صحابی مبارک. این درس یاد داشته باش که چیزی که در وجود تو بسیار خطرناک است و سبب بدبختی تو میشه زبان است. برای از زبانت حفظ بکن و اینجاست که ای صحابی مبارک ای حدیث شریف برای ما شما روایت کرده تا ای درس ما مسلمان ها هم بگیریم و مطابق ای درس های پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم بگویم که پروردگار ما الله جل جل هو و هم استقامت داشته باشیم و هم زبان من منحیس یک وسیله خوب هم بدانیم و وسیله خطرناک هم باید بدانیم به این خاطر در محافظت زبان هم و تلاش بکنیم حدیث شریف بعدی رو نجات در حفظ زبان است خب وقتی که نجات در حفظ زبان است ببینیم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نجات در حفظ زبان است اینجا وقتی که میگه نجات در حفظ زبان است ببنوك بيغمبر صلى الله عليه وسلم دعي قسمة شيء بفترس وعن عقبت ابن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاب قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وك على خطيئتك ووه الترمذي وقال حديث حسن انجه حسن عقبت ابن عامر رضي الله عنه اسحابي مبارك نگه گفتم به پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم که ای پیغمبر خدا من نجات و نجات در چی هست؟ قال امسک علیک لسانک امسک امساک نگه داشتانو میگن یعنی نگه بدار چی را؟ زبانت را بیتک و باید بر تو وسعت داشته باشه. خانت یعنی در خانه دلتنگ نشی وقتی علا خطیعتک و به اشتباهها و خطاهایی که می کنی از کس پیش تو سر می زنه گریه بکن رک وقتی که ما شما دقیق فکر می کنیم می بینیم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم سه درس اساسی در زندگی برای ما سه دقیق از این حدیث شریف استفاده میشه درس اولی چیست که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم برای انسان این درس وسیله نجاتش قرار میده بنام اگر کس سوال میکنه که من میخوایم که نجات حاصل بکنم پیغمبر سم برش ای سه میده که اگر ای سه سرمشق زندگیت قرار بدی ایسی عمل کرده سرمشق زندگیت قرار بدی در ایسی تو در جمله فرقی ناجیه هستی کسانه که نجات حاصل میکنن و در روز قیامت از سختی ها و مشکلات نجات حاصل میکنن در پولیسرات از مشکل نجات حاصل میکنن و همچنان از جنت استفاده خواد کرد و از دوزخ نجات حاصل میکن. ای خدا ای سی درست ما بگو ای درس که زندگی انسان نجات بخش بسازن چی هست؟ پیغم بستم برای صحابی مبارک میگه امسک علی لسانک اول زبانت حفظ بگو نجات در چی هست؟ در حفظ زبان هست بسیاری کسا وقتی که با هم شش تا اشت طاقتشون نمیگه گپ نزنن. اگه که تو 2 ساعت بشینید 400 ساعت بشینید و اگه جای مهمان میباشن 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت اونم لحظه که صاحب کتی یک نفر جان مقابل شش دیگه که شروع میکنه گفتم میره، میره، میره، احیان که کل دنیا خلاص میشه چون این انسان عادت کرده که باید گپ بز از این خاطر وقتی گپ های خوب خود یاد نمی کنه. از خانی زوج بزن، از خانی زوج بزن، بدی ازیر بگو، بدی ازیر بگو، امسایی خرابی نداشت، فلانی از خود گیمایی شد، تو شد، تو شد، تو؟ اینجا باید مرسی اسلام میگه، امسک علیک لسانک، تو زن مسلمان، تو مرد مسلمان، تو نوجوان مسلمان، تو دختر مسلمان، امسک علیک لسانک، زبانت در حفظ داشته باش، اگر زبانت در حفظ داشت باشی در این صورت است از که تو نجات حاصل میکنی. از آیه ما از خود سوال بکنیم که آیه ما در عقب نجات هستیم که نجات آزل بکنیم و ای که در روز آخر، در دنیا و در آخرت به بدبختی مبتلا, مبتلا باشیم اینجا انسان از خود سوال بکنیم رقم ما بر ما درس داده نه؟ اگر نجات میخوایی نجات در حفظ زبان است خب ای درس اول درس دوم چیست؟ درس دوم ولیه سعقبه ای تو. بعضی کساس که خانه خودش سرش تنگی میکنه، دلش خانه خودش دک میارن په این خانه خودش نمیتونه وقتی که بیکار شد بسیاری کساس هست طفلکاش خانه هست وقتی که بیکار ما این بین خانه باش اطفال ده درس بدهید میره نیست بیرون دادن دوکانا قسم می کنم میکنن می والا در خانه دلم تنگ میه در خانه ششتا نمیتونم والا در خانه برمی این مشکل است در خانه چطور است چراست جو شیطان برش خانه خودش برش زندان سخته دقاق بقیمه سلام میگه نه نه نه نی اگر تو میخوای که نجات حاصل بکنی باید خانه برات بسیار واسی باشه بانه است که در خانه احساس دلتنگی نکن در خانه تلاوت قرآن ازیم شانه بکن خانید قبرستان جور نکو، در قبر کس نماز نمیخونه مسلمان ها در قبرستان مسلمان ها نماز نمیخونه در زیارت مسلمان ها نماز نمیخونه از این خاطر تو خانید قبرستان و جورناکو که در اوج قبر باشه پیغمبر صلی الله علیه و شما خانید اون قبر نسازین مانایش است یعنی تو نکنه که من قسم که در قبر قبرستان زیارت کس نماز نمیخونه مسلمان ها شما این خانید نماز نکنید بلکه باید وقتی که بیکار موندید خانید نماز بخوان، نفل بخوان، درس بخوان، تلاوت قرآن بکن و مطالعه بکن کار بک و زحمت بکش امرای اعضای فامیلت کار بکن برای اطفال درس بده به سری کساس خودش خوب عالم از خودش خوب میفهمه اما اولادش نماز یاد ندارن اولادش اتحیات تحیات پرسون یاد ندارن اولادش جواب کلمه رو یاد ندارن حتی بدبختی است که بسیاری کسایی هستند که نه تنها اولادهایشان چیزای خوب یاد ندارند بلکه اولادهایشان به گمراهی و بیراهو و بدبختی میره. این علتش چیست؟ این علتش مادر پدری هستن که به درد برش نمیتون تلویزیون ها را ماندن و در تلویزیون فلم های مبتزل اون دوها هستن این تفل اون دوها را یاد گرفته ایک تفلک هست ای برش میگه که بچین دخترم دعا بکن بر مادر کلان فوت کردن ای وزید که دست خود قسم کنن ای قسم میکنن یک دفعه ورخطا میشه رنگشون سفید میپرد. اینجایی که خود به بخاطر از این که خودت برازی اولاد درس دین ندادی. نگفتی که مسلمان ها این قسم دست خدا بالا میکنند و دعای مسلمان ها این قسم هست. این نمسته ای, ای خواادت اون دوها هست. کساییست که گودی ها را پرستش میکنن، بودها را پرستش میکنن. یک دخترک خانی ما میمان آمده بود. امروی طفلک میکردن. آروسی جور کرد متاجه شدن که اورزه که این ای آاررس شاندهیم این آاررس کالا پوشانیم او دخترک بش خ اینا گرد و آش چه شخصم درشان این از کجا یاد گرفته این از سرریال فلم یاد گرفته و باور بکنین امی تفلک تفلکس است که, ما گفتا که من گفت تا نمیتونم ناموششه لكن تفلکس هست که خدام غیبتشه نکنه که خودش خوب علمیت و دانش داره خوب خدا را میشنناسه خوب قرآن هم میشننان والا استفل خودی خبر است طفل, طفل شوندو میشه به خاطر اینکه برای طفل خود فرصت نداره وقتی که در خانه اومد دلش تنگ میادن باید سر بام بالا باید در کوچه ها بره باید گپای زشت بگویه باید موبایل خود مسخرگی ها را ثبت بکنن به خاطر برای اولاد خود وقت و فرصت ندارن پیغمبر صلی الله علیه و سلام میگن نجات دهی هست که تو باید در خانه دلتن نشی خانهت باید بر فراخی بکنن درس دوم دست اول امسی که علیه درس دوم در خانه خود باش وقتی که بیکار بودی در خانه خود باش امروی فامیلت امکاری بکن بر خانمت احکامتی نبکن چیزی رو که یاد گرفتی برای اولادایت تشریب بکن توضیح بکن از این وسائل که است چقدر خوب است انا تو مسلمان که صدای صدایی مره مشنویم چه خوب است که خودت به امروی فامیلت اینجا چین و ما منعیس خدمتگارای عزیدین منعیس جبرازی های عزیدین برش خدمت شما قرار داریم برتان صحب میکنیم برتان میکنیم در خانهایتان قرار تا چایتان هم بخورین قرار آرام میشسته خوشحال در بین اولادتان این درس گوش بگیرین و این درست که گوش گفتین پسان سر درس بر دیگه دوست هایتان هم برس ای خوب است و ای, ای که از رادیو، تلویزیون، و تلویزیون و از فلم و از کامپیوتر و استفاده منفی شده استفاده مثبت کردی نجات استفاده منفی کردی خدا هم به غضب خداوند مبتلا کردی و احضای فاملت هم به غضب خداوند مبتلا کردی بنامه درس اول حفظ زبان کی درس میتره؟ رسول خدا صلی الله علیه وسلم او میگه که نجات از دی. وقتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه نجات در این چیز است پس ما چرا ایره در مورد از به توجه هستیم و این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سرمشق زندگی خود ما اساسی پس اگه ما مسلمان حقیقی هستیم ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم منبع راهبر خود هستیم بعد در سایه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدیقت گوش بگیریم و از او درس بگیریم این مانایی ای بسیار کار غلط است بسیاری کسا چل حدیث هست خانده میرین خانده میرین خانده میرین لیکن در شخصیتش هیچ تاثیر نمه در حدیث آیت و قرآن و حدیث باید باستن است که ما از او چی کنیم از هر آیت درسته بگیریم و اعمالن تطبیق بکنیم از هر حدیث درس بگیریم و از زندگی خود عملا تطبیق بدیم خب ایدو درس شد درس 30 یعنی 42 چی است وابکی کی علا خطیاتک چی معنا وابکی کی علا خطیاتیکا یعنی وقتی که از اشتباه شد غلطی کردی تکرار بکن خاطر اشکی بتنهایی به خاطر ترس از خداوند و ترس از عدالت الهی قطرات اشک می‌ریزه، ای سبب رحمت خداوند میشه. در حدیث شریف هست که هفت تایف مردم هست که زیر سایه عرش خدای اصلا جل می میباشند. این هفت تایف مردم کی هستن؟ یکی از این تایف مردم که اهل که در تنهایی پیامبر (ص) میگه که خدا رو یاد کنه و قطرات اشک از چشمایش جاری شود. پس ما باید چی کنیم؟ وقتی که اشتباه بیش ما میشه، یک قطر اشک قطرات چی هست؟ چطوری یه قرزه بخاطر از این که این قطرات عشق قطرات عشق ندامت هست پشیمانی هست از اونمو عمل بعد خود که انسان پشیمان میشه و میگه خدایا من این کار زشت دگر نمیکنم برن این سه درس اساسی هست برای نجات یک مسلمان هم در دنیا و هم در آخرت دین اتنیست که بعضی کسان میگن نه دین فقط برای آخرت است نه نه نه نمیراد رازی است ایگه اب است بعضی همان دین برای دنیا برای دین إنسانا متدير مكتب، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا. دين هم بره الدنيا هست وهم بره آخرة هست. مسلمان هم مكتب خوبية الدنيا رو خدا نصيب مكتب وهم خوبية آخرة هست. بناان ای ساي پیغمبر صل الله عليه و سلم وقتی که انسان زبان خود حفظ میکنه و در خانه خود کار میکنه و زحمت میکشه و در خانه خود دل تنگ نمیشه و و گناه های خود و اشتباهات خود گیریه میکنه احساس پشیمانی میکنه ای هم در دنیا سعادتمند میشه و هم در آخرت به حدیث شریف دیگر فروتنی اعضای بدن انسان در مقابل زبان اینجا ببینیم که چرا در اعزای بدن فروتنی میکنن در مقابل زبان و عن ابی سعید الخضری رضی الله عنه حضرت ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه چی میگه؟ عن نبی صلی الله علیه و سلام حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلام روایت قال اذا اصبح ابن آدم وقتی که صبح میکنن داخل میشه در صبح فرزند آدم یعنی ما شما کله فرزندان آدم علی السلام هستیم اذا اصبح ابن وقتی که صبح میکنه فرزند آدم فان الاعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فانما نحن بك فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا رواه الترمذي. ایج ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنه بیگه که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی گفت؟ میگه که اذا اصبح ابن آدم وقت که اولاد آدم صبح میکنن یا در وقت صبح داخل میشه فان الأعضاء كلها تمامی اعزام کلش فان الاعضاء کلها تمامی اعزای بدن انسان چی میکنه؟ تکفر لسان مایه احساسی چی میکنه؟ آه و بیشراگی و چی میکنه؟ برکی؟ بر زبان تقول براش میگه الله حفینا ای زبان از خدا به ترز در مورد ما فاکن ما نحن بك ما همه به تو وابسته هستیم فا این استقامت استقامنا ای زبان اگر تو استقامت داشی ما هم استقامت می داشته باشیم و این اعواجشت و اگر تو کچره اختیار کردی اعواجشنا ما هم امرای تو کچره میشیم از این حدیث مبارک حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم چه استفاده میکنیم؟ حضرت ابی سعید خدری ردیلت که یک صحابی جلیل قدر است این میگه که نبی کریم صلی الله علیه وسلم گفت اذا اصبح ابن آدم وقتی که صبح می اولادی آدم یعنی اینجا برمون میگه وقتی که ما شب تیر میشه صبح میشه در وقت صبح میگه تمامی اعضای بدن انسان دست انسان چشم انسان پای انسان تمام اعضای بدن انسان مه پیش کیپش زبان باور زبان میگن که اتق الله نه در مورد ما از خدا بترس این زبان تو از خدا بترس به خاطر از چرا ما به تو وابسته هستیم تمامی اعضای بدن انسان به چی وابسته است به زبان باز سوال باش پیدا میشه چطور تمامی اعضای بدن انسان وابسته به زبانش است ببینید شخصیت انسان به چی وابسته هست؟ به زبانش است چودر در بسته باشد چی داند کسی که گوهر فروش است یا پیلور وقتی که زبان بسته باشه سعدی دهان انسان به چی لپا انسان به چی تشمیه میکنه با دروازه های دوکان به چی در بسته باشد وقتی که دروازه بسته باشد چی داند کسی کسی چی میفهمه که؟ گوهر فروش هست یا پیلور؟ وقتی که دروازه دوکان بسته باشد لو هم نداره چی فکر میکنی که آیا این دوکان فروشی است جواهر میفروشند؟ الماس و دانه قیمتی هست؟ ویا ای که پیلور است یا دوکان کرم پیله هست؟ کرم عبریشم؟ می‌صن اِدار چی می‌فهمه وقتی که دروازه دوکان باز شد شیشه ها را داخل شدی و کردی اوه هو و خدای دوکان دوکان جواهر فروشی اوه هو او گمش که چکرما هست و کرم ابریشم است فلان شونند اِدار بالا با اینمی قسم حضرت سعدی وقتی برام میگه شخصیت انسان هم با زبان از تو تعلق داره وقتی که دهان انسان بسته باشه کس چی میفهمه که چی گونه شخصیت داره بران شخصیت انسان با زدن معلوم میشن یک کس بسیار زیبایی چهره داره جوان بسیار مقبول است خوب آخرین استایل های نک داره آخرین ستایل جمپرد پوشیده آخرین ستایل پتلون پوشیده لباس بسیار مقبول پوشیده چهرش زاین بسیار خوشت مه ولی وقتی که زبان خدا باز میکنم زبان خدا باز میکنم آه کاش که ما امروزی هیچ روبروی نمیشدم کاش که ای کاش با تو هیچ مقابل نمیشدم کاش تو هیچ گرم نمیده ای قسم زبان انسان چی هست؟ زبان انسان این سخنگوی مثلا در هر وزارت چی هست در هر وزارت یک سخنگوی است سخنگوی وزارت خارجه، سخنگوی رئیس جمهور سخنگوی فلان سخنگوی فلان از این خاطر اگر کدام رئیس جمهور بی باشه سخنگوی خود یک انسان لاودا تعیین میکنه که وقتی کو به گپ میزنه گپ های خرابه میگه بله رئیس جمهور مثلا وزرا اینا همیشه سخنگوهایشان شخصیتای میباشه که بسیار فصیح هستن بسیار درست تحلیل میکنن درست نگن میکن. اینا شخصیت انسان وجود انسان سخنگوشی از زبان انسان است. شخصیت انسان وابسته به زبان است اگر زبان درست سخن گفت سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله خدای ما را دعا کرد که پروردگارا ما را از بدبختی‌ها نگا کنی خدای چشم ما را از بدین واگوری گوش ما را از بدین واکنی چشم هم متوجه می باشه به قفای زبان چشم هم منفی استعمال نمیشه گوش هم منفی استعمال نمیشه دست و پای هم غلط استعمال نمیشه اما وقتی که زبان یک دفعه خواندنش شروع کرد باز دست‌ها هم که شروع به میاد پای هم که شروع به میاد و اعضای بدنم کلش می از این خاطر میگه تمام اعضای بدن که هستن اینا می این برای زبان میگه او زبان از خدابط از در مورد ما دو هستی که ما را در آتش دو زخم میپردی چرا اگر زبان کفر بگوید انسان تمام اعضای بدنش در میگیرد اگر زبان غلط استعمال شود، انسان به بندی خانه میرد اگر کسی کس را دشنام بدن او که جنگ میکنند لطش میکنند برند دیگر اعضای از خاطر تمامی اعضای بدن انسان وابسته هست به زبان انسان نگه کلی اعضای بدن انسان می پیش زبون و بررسوم که فر استقامت به استقامت و این اعوجاج تا عواجش اگر تو مستقیم بودی ما هم مستقیم هستیم اگر تو اه... کجرویشی کردی ما هم بکجرویشی اه... ساق دادم میشیم خب از این حدیث شریف ما فکر بکنیم که ما از این حدیث شریف چی درس بگیریم چی درس میگیریم این ای حدیث شریف، از این حدیث شریف میگیریم که اگر میخوایم که چشم ما جوش شه اگر میخوایم این درس میگه پیغمبر سلیم برای, می می برای, می می برای ما درس میده. چی میگه پیغمبر سلیم الله علیه و سلم چه خدمت از بر ما میده؟ میگه پیغمبر سلیم الله علیه و سلم بر ما درس میده که اگر می چشمت اصلاح شود، گوشت اصلاح شود، می که دستت اصلاح باشد، پایت اصلاح باشد، تمامی اعضای بدنتو اصلاح باشد، بناه اول اصلاح از زبانت شروع بکن. الفاظی که شایسته زبان است، او را درست استعمال بکن او را مثبت استعمال بکن بناهن آن وقتی که تو زبانت را مثبت استعمال کردی، باز باد از میتونه که چشم دست گوش. یعنی مثل زبان مثل شیواره هست مثل اونمو چیز موتر است که وقتی در دا دست در است، اگر امو غلط بردی پای هم کج میره. موتر هم به کجی میره، سقوط میکنه، دریا میفته، دکو تا کار میکنه. اما اگر اشترنگ موتر مستقیم راست اما تو درست گریفتی بران زبان است که تمام اشترنگ است که تمام موتر منظم و خط مستقیم در حرکت میرن زبان انسان همیشه است وقتی زبان درست شد دست هم درست حرکت میکنه چشم هم درست حرکت میکنه بران یک درس بزرگ از درس های مکتب نبوت است که انسان که میخواد که اعضای بدنش درست شود اعضای بدنش دگیش چشم و دست و پا و گوشش حواسش کلش درست مصرف استعمال بکنن آغاز کار خوده از اصلاح زبان خود بنا لفظ بی جای نگوید، سخن بی جای نگویه، کلمات بی نگوید، اول لا اله الا الله، وقتی که انسان با زبان میگه و با قلب او را، چه انسان مسلمان میشه، اگر نفر 100 سال کافر است، لکن یک دفعه که زبان خود گفت که لا اله الا الله محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم و او را قلبا تصدیق کرد، بنامه از کفر به طرف به اسلام داخل شد. ایاس yes. اهمیت زبان دوستان عزیز امیدوار هستیم از این درسی که عزت رسول کریم صلی الله علیه و وسلم بر ما در مورد زبان که یک عضو بسیار کوچکتر وجود انسان هست حتی به چرا زبان دکتر هم نداره ما دکتر چشم داریم دکتر گوش داریم دکتر بینی داریم دکتر گوش و گلو دکتر میده و دکتر قلب و دکتر صدانی لکن دکتر زبان نداریم بسیارترین وظایف هم زبان انجام میدادن در بین بسیار خطرناک هم هست و زبان وظایفی بسیار زیادی هم داره زبان چیزی بسیار مهم و عمیق قسم که اهمیت زبان از نگاه آناتومی وجود انسان از نگاه فیزیکی در دهان انسان وظایف زیادی را اجرا میکنه مهم است به این شکل از نگاه معنویت و از نگاه سعادتی دنیا و آخرت هم زبان تاثیر بسیار مهمی داره خداوند متعال جل جلاله برای تمام ما شما توفیق نصیب کنه که الله تعالی زبان خدا به شکل استعمال بکنیم که در اون رضایت خدای عز و جل باشه و هم سعادت دنیا و هم سعادت آخرت الله ما شما نصیب شویم سبحان ربک رب بکره بلنزتی اما یاسفون و سلام عرومرسلین و الحمد لله رب العالمین